Thank you. یک در آب تکان می‌خوردند و ماهی‌ها مرتب آنها را از این درآمبر می‌برزدند. شب بیشتر از 50 ماهیگیر در یک صف طولانی تور خیلی خیلی بزرگی را از آب بیرون می‌آوردند که پر از ماهی بود و با و پای می‌پریدند. خیلی عجیب بود. ماهیگیرها تورها را از دریا جمع کردند و به طرز عجیبی ماهی می‌گرفتند و همین من و من همینطور که نگاه می بیشتر تعجب می که چگونه این کار را می از آن به بعد هر وقت ماهی می یاد یا آن ماجره عجیب می این بود انچه من درباره یک ماجره عجیب آقا تموم. ای کجاش عجیب بود که خوندی چهار تا ماهی گیر یه طول تو دریا دوتا ماهی میگیرن خب آقا واسه ما عجیب بود چون تا بال ندیده بودیم چی جوری ماهی میگیرن آها شما باید یه چیزی بنویسی که برای همه عجیب باشه برو بشی برای نه نه نه برو دیگه کی طلبه؟ آه. دستاتو رو بندازید بذاریم کسایی که تا حالا نعی اومدن بیان. چیزی نوشتی؟ با مایید بله با شما راستش آقا نه نوشتی ها نه یعنی نوشتیم ولی انقدر داستانه عجیب بود که خودم ترسیدیم به نوشیمش آه. اگه آخر سال یه نمره عجیب غریب تو کار دیدی نه درسی یا بیار این پایین دست رو. بیار پایین. سعیدی. سعیدی بودی دیگه؟ بله. نوشتی انشاد؟ بله آقا نوشتی. وضع انشاد بد نیست ها؟ عدبیاتمون خوبه. فقط یکم طولانیه. ممکنه جاهای حساسی زن بخوره. اگر اون زنگ خور، بعد بایاش دفعی دیگه بخوره. خوش بود. هلو. قربانه. نه هیچی. نه نمیشنه یه چی؟ من نه یومات بیگی تو فکرش هست نه ببین بعدمیذد زدم بیسم الله علیه و سلم باش حتما خدا بس پدرم خدا یک ماجرای عجیب, عجیب رو تعریف کنم سالها پیش پدر و مادرم خیلی دوست داشتن یک پسر داشته باشن خدا یک ماجرای عجیب رو تعریف کنید پدر و مادرم خیلی دوست داشتن یک پسر داشته باشن برای همین مادرم برای دنیا اومد و ماجرای من از وقتی شروع شد که به دنیا اومدم. مواظب باشید هر داشن خوبن. حسایه. پدرم آشپز و 10 کیلوانیم. آره خوب حسایه. نه نه بذم نشون یا بذم نیشه. پدرم عاشق ریاضی بود. برای همین میخواست تیکن بداند و واقعاً به خصوص اندازه داره سرام چقدر است. بلکه همه را دقیق فهمید و دقیق برای آموزش نوشت که در خارج درس میداد. البته ریاضی. اصلاً کل خانواده پدرم ریاضی دام بودن. و من آخرین و تنها پسر تو فامیله اونم برای همین بابام خیلی دوست داشت که من قبل از بابا، مامان و آب شمردن رو یاد بگیرم یک دو بابایی بابا بابا من نها کن بگو یک دو سه بگو بیا باباشون بگو بابا بگو یک دو سه، بابا یک یکی یکی بگو بچم بتونه بگی بابا پسر منه زبون با کنه تا صد راحت میشوره بگو بابا، بگو یک دو سه بگو بابا جو. بگو یک یک دو چی گفت؟ ای جانم گفت توپ حالا <تصفيق> بچه های دیگر من تازه توانستم در کلاس اول از یک تا در بشمارم نتیجه آخر سال املا فارسی بیست انشای فارسی بیست ریاضی هیفته هیفته ریاضی هیفته شنا کمک گره. بابا اینقدن ازاشم اومده بود که بعضی از همکلاسیان فکر می‌کردن یکی از معلماست. مادرم که هرچی باشه مادرم بود. بعضی وقتا طاقت نمی آورد. بده من. این بچه فقط یکم ریاضیش که دیکته و انشاش همیشه بیسته. دیکته و انشا و ادبیات به درد زیر کرسی میخوره خانم. دنیا دنیای ریاضیات و حساب کتابه. من یه دونه نوز ریاضی با 100 تا 20 دیکته باز نمی‌خونم. این بچه‌م هم همینه که هست. ابداً نمیشه. این مورد تو ببینیم مامان. ولی حرف مادرم درست نبود. نه در مورد درسم. در مورد اینکه عوض نمیشم. چون ماجرای عجیب من از زمانه شروع شد که پدرم تصمیم گرفت ژن من رو عوض کنه. برای همین... چی تو عوض کنه؟ جن من آقا. ژن تو عوض کنه؟ بله، واسه همون نمر ریاضی که بیس نمی شدیم دیگه ولی این اون ماجرای عجیبی نیست که میخوام تعریف کنم این شروعشه خب، بخومه چشم ماجرای من از آنجای شروع شد که مادرم تصمیم کرد. همین که گفتم این بچه هیچ جا نمیاد خیلی متوجه نیستیم بابا من شدم یه دروغوی هرفیل همین ساله دارم به همین دروغ میگم به دوست، آشنا، قریبه، کاسب محل، کارمند، همکار، پامیل با خواهر بردرم هم کهت رابطه کردم از ترسم برای همین دیگه میخوام تمومش کنم من مدیرامل باید از کارمندم خجالت بگشم هر سال میدونی واسه چی؟ طالبتون نگفته بودم واسه عکس بله خانم عکس آی سعیدی چرا عکس رو نمیدن تو روزنامه جزر شاگرد اولات چاپ کنن میدونی من چه جوابی بهشون میدم خب لابط میگن وعده‌ش نشده دیگه نه خیر خانوم نخه من هنوز اونقدر چیز نشدم بهشون میگم من اهل تظاهر و خودنمایی نیستم تظاهر خانوم تظاهر میدونی یعنی چی یعنی یه دروغه دیگه بابا به کی بگم منم آرزوم که عکس بچه‌مو چاپ کنم تو روزنامه این هوا؟ بابا باشه دخترم، چشم. حتماً. یعنی امیدوارم دکتر اسدرو تمام دنیا قبول دارن وایسا ببین چی میگم بخیر چرا توجه نمیکنه کنی خانوم من کلی واسطه تراشیدم تا این موقعی شب به وقت داده آخه باید بیه ببینین دکتره چیکار میکنه همین موش همین موش که اینقدر مغز داره رو یه جوری درستش کرده که تمام حروف رو میده گوسبنده شون بهش میگه یک یه دونه با میکنه میگه دو دو تا با میکنه همینجوری تا هفت و اشت رو هی با, با میکنه و میشموره میمون میمون ها که دیگه اصلا نگو. مسخره میکنی چرا خانم؟ نخ دانشگا نمیرن، می نویسن، می بنویسن. البته چیزای ساده و پیش پا افتاده مثل موامان و آب و اینجور چیزا. در حال این علمه و من از هر روش علمی و غیر علمی استفاده میکنم که درستش کنم و می دیگه دوره این بیابرویی ها و دروغگویا باید تموم بشه بفهمم. چارده 15 سیزده چارده دوازده 12 نگاه کن تو رو چیه؟ این چرا کنده شده؟ ها این چرا کنده شده؟ <تصفح> راستش بابا من کاغد سفید میخواستم من کنده. ها البتهش برگم نمیکنه، ها اینی ای که کنده شده با این نمره‌ای که هست برای من هیچ فرقی نمیکنه باشه شو. باشه باشه شو بریم بهیت. این بچه هیچ جا نمیاد. تا حالا هر کاری خاصی کرده؟ دیگه تموم شد. بابا این همینه ژنش همینه. عوضم نمیشه. یعنی نمیذاری بیاد دیگه نه؟ نه. خیلی خب. باشه. باشه من میرم من میرم من اینو بدون مینو تو به این کارت فقط جلوی من بایی نستدی جلی علم بایی جلو جلی پیشرفت آینده پسرت بایی سدی جلو بر تو اتاقت نمیخوام ریخت تو ببینم و از خاطر دو نمره بابا تو دربه در کردی بر ببینم ماما ماما بله مادر چه بابا بردار بابام هیچ وقت عادت ازش خره کنه این اول اون بارش بود همینطور که میدونید یکی دو روز دیگه آزمون استعدادهای درخشان ریاضی مدرسه است متاسفانه تعدادی از دانش آموزان که نمراتشون زیر هفده بوده نمیتونن در این آزمون شرکت کنن که این موضوع باعث اعتراض والدین اونها هم شده که البته حقم دارن نمره دانش آموز همینطور که حیثیت مدرسه به آموزگاره آبروی خانواده هم هست اصلا کانون خانواده ها با نمرات شما عزیزان گرم میشه پس هرچی بالاتر گرمتر محکمتر نظری چل بشه اون جایی که میتونید روابط خانوادگیتون رو با نمراتتون صف کنید توجه داشته باشید اگر شما با یه پدر و مادر سر و کار دارید دست کم با 200 از اون‌ها رو بیرون هستید بس اون جایی که میتونید درس بخونید بعضی از دانش آموزان که نمیخوام اسمشون رو ببرم بکردن که با تقلب میتونن این کار رو بکنن یعنی کانون خانواده رو گرم کنن ولی ذهی خیال باطل تقلب مثل توف بالا میمونه آقابت بر میگرده تو صورت خودمون پس تقلب نکنید تو مجلسه که نمیدونستن که منظور آقا مدورمون همکلاسیم امیر بود استاد تقلب بود میگفت اموز شدش میده تازه اون یه پدر و مادر نداشت بابا و مامانش طلاق گرفته بودن برای همین دوتا مادر داشت و کارش خیلی سختتر بود ممنو هر خونه خیلی کیف می‌کنه. ما درفیت دو ماه خونه خاله‌مونا بودیم. خیلی خوش گذشت. ولی بابا زود برمیاردن. یعنی هر روزه، موقعش یکی دو روزه برمیاردن. اگه بخوام برگردن از من می‌پرسن یا باید بری پیش میمونا. یان که از دستش بنویسی، اگه بذاره همه رو بیسی روزو کن اومد یعنی تقلیب کنم تقلیب که نه جواب سوالایی رو که نمیدونی بنویس که چیز نشه چی نشه اسم ماما نتبذ نشه کی خوف فرق میکنه بابایی کسی روز از شونش خرکرده باشه اه آه. اگه سر روز کرده باشن چی میشه هیچی دیگه عشمیمو نتمز میشه مانه من که اینطوری بسید با این برد درست خودم که معلوم بود یعنی معلوم نبود بله خواهر و مادرم چی؟ مادرم اینجا بود که به فکر دایی افتادم تو فامیل همه قبولش داشتم البته بیشتر تو فامیل مادر. از وزن منم خبر داشت. آره میرم پیشش میگم دایی به داد خواهرت برس نه زبا خاطر دو نمره یکی به داد برسه ایوه هنس! من نمیخوام دخترم مادم کوری بشه یکی باید بگم؟ من دخترم رو میخوام دست فم نو بزنی از این خونه میرم اتفاقا دست میزنم که بری از شبت خلاص شم نمیخوام دخترم در خونه نمیخوام خونه رو تاقت گذاشته با اوکی باهات شدم با الان دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه بعد پول دعوا سر بچه هاست به خصوص نمره هاشون شایده باشه معلوم نمی‌کنه که همه از دم از همون اول دکتر مهندس استفادش میدن. دن واسه همین آبجی رو نمره تعصب دارن آبجی شما مثلا فکر کردی همه مثل بدبخت بابای خدا بیاوز ما اصلا نمی چند بچه داره آبجی الان خیلی ها تو بچهشون شون هیچی نمی بینن الا نمره بیس شد عالیه، نوزه خوبه، هیجده ای ولی پونزه شد حتما با یه سر بچه دکتر مثلا همه خونه ما سعید خانم یه روز اگه یه روزی این ما نوزه بگیره بیاد خونه حلا بیاده کن تازه ای خدا بخواد آبایی ما کلیس چهاره حالا پنج فردا راهنمایی داره دو روزیگه دبیرستان داره اینشالله با امید خدا دانشگاه بله خراب یا این باید بیاد بالا، یا اون بره پایین که ظاهره هیچ کدوم بالا پایین نمیشه من میگم بیره بیارم من میگم رضایت بده یه سر ببر پیش دکتوره که باورش بشه این بچه همینه میخواید روی بی بلا. آخه داداش شما که خبر ندارید که فکر که دفعه اولشه این جوشونده است برای تقویت حافظه از کلاس اول داره به خورده این بچه میده حالا قبلش دیگه نمیگم چیکن اینا نمیدونم چه کوفتیه سفارش میده از چین میارن یه چیزی هم این یه زهر ما همه هم را بچه هم اچه میخوره هشت هست هشت ها اون دفعه کجا بردت بنا تبه سوزنی تپ سوزنی نمیدونم کجا بردش تپ سوزنی تمام سرتن این بچه رو سوراخ سوراخ کرده ده. جاش جوش از اندوز لباس لباس دایی ببین ماما میخواد بابا اینجوری اینجوری می‌کنی من قبچ 100 دفعه دیدم حرفت رو بزن خب پنج سال همین بساطه به قول فرمايش شما تمومی هم که نداره امروز اینه فدای چیز دیگه است تازه بماند که یه مدت میگفت این چجوری لطفاً ببخشید من حواس ندارم بگم یه دقیقه بفرمایید بشین. نمیخواد باید برم وبچی گرفتارم. حالا کجاستین بشین دو دوتی کلمه حرف فایزه. چه میدونم شرکت. نگران اون نیستم. به قول مادر خدا بیا مرزمون این لباساش که بو بگیره خودش برمیگرده. به خدا داداش به خاطر خودش نذاشتم ببرتش. گفتم یه روز این باید بفهمه این بچه همینه که هست. بعیدام به خودی مزاحم شما شد. بابا چی میگی چه مزاحمت وظیفه‌م دیگه؟ شلو لا گیرش نمیارم با اعتراف می سازم کاری نداری دقیقه نمیشی نه خوبه چهوری یی با شربت می خوردین آقا شربت غم دارم لا رفت هفته داریم درس من بعد راهنمایی می رفتم دبیرستان می رفتن انشاء دانشجو می رفتن باید یه فکر اساسی میکردم بابام که کوتاه نمی پس من بعد ازم میشدم با همین تسلیم گرفتم برم جوزه تقلب کنم یه تقلب کنه افی آدم واسه اینکه 20 شه یا باید درسش خوب باشه یا اینکه که تقلب کنه دیگه باید هر چی کتاب در نوع تقلب نوشته بودن رو میخوندن شاید من میرفتم پیش اموی امین برای حفظ خانواده به خاطر اونا به خاطر مادرم از من میپرس. کتاب نداره تقلب کتاب نداره به فارسی که نداره این همه آدم داله نیست که به فکر نبوده نه فقط یه نفر میتونه بنویسه شاید هم اونم ن یا بیرون معلوم میشه تازه تقلبی که کتابشو بنویسن یه تقلب نیست اون شده رفته ریاضی رو هیچ که نمیتونه بنویسن باسه چی؟ از من نبارس نگوی اون مادر جدیدم رولوم خیلی اساسه تقلب نداره نه کل فکر کردنی و حل کردنی ها تقلب نداره حفظ کردنی ها فرق میکنه میپرسه قدر کجاست میگم اینجا میپرسه احرام کجاست سینگم اینجا خاصیت ها اینجا اینا حفظ کردنی هن. ولی ریازی مثل این هست هر دفعه باید فکر کنی راهشو پیدا کنی دیدی گفتم ریازی تقلب نداره پس بس همونه بیشتره بچه ها رو یادشون تو خارج امکاناتش هست همون میگه ولی اینجا فقط یه راه داری از ازودست؟ آره یا رد و بدر یا است رد و بدر رفاقتی همون که از اول بگفتن این که رفاقت سرشه میشه پس میونی است فقط باید یه یعنی اینکه عجیب و غریب پیدا کنیم که بتونی ازود بخوریم بود که با آم قهر کرده بود ریاضی که تقلب نداشت از رو دستم که تا دانشگاه نمیشد دیگه ناامید شده بودم داشتم به این فکر میکردم که اسم اومان جدیدم چی باشه بهتره هرچی میخواد باشه من که اومان صداشت نمی کنم نمیخوام دست بخونه این بچه داره پیل کاغتا میشه میخوام تک بگیره دفت بگیره بره زیر کمپرسی Look at you Let us find the come دستاتو به شروع لباسم عوض کن بی غذا شایدی مامان جمع کنی و نارو میخوام غذا بیارم دایی رفت بشه بابا آره گفته چند تا لباس برش بفرستم. فقط همین. به گفته تا نبردت پیش اون دکتر رو خونه نمیاد دایه خب شبا کجا میخوابه؟ چه میدونم به داییت نگفته معلوم نیست. چی؟ هیچی؟ میگم ما میدونم فایده نداره فران خب بذار با بابا برم اونجا واسه همه هم خوبه بدتر از اون تو پس نیست که دیگه چی؟ دفاع آخرت باشو بر من تنین تکلیف میکنی قضا تو بخور پاشمور تو اتاقت نمیخوام ریخ در تا ببینم بخور نمیم حضورت بخور حالا گیریم که <متضح> نفع بابام برمیگشت و مادرم هم نمیشه. ولی بالاخره من راهنمایی داشتم دبیرستان داشتم شلو دانشگاه بالاخره با این وز تا اون موقع حتما مادرم عوض می شود. با خودم تصمیم گرفتم اصلا خودم بذارم جای شگرد اول ببینم چی کم دارم چی کم دارم چی کم دارم خب معلومه بیس کم دارم اینک بیشتر شگرد اولا اینک می میزنم. جور عزیب دوست داشتم همهش به چشمم باشه انگار برای شاید دربر شدن همین عینک را کم داشتم که همینطور هم بود و ماجرای عجیب من از اینجا شروع شد آقا, آقا آقا ما بریم بیرون آقا فوریه بله آقا ما هم آقا فیلم های حجانه اینجوری میشیم آقا ممکنه نتونیم خیلی خوب برو تا زنگم نخورده رای. برو هر کاری د تلفن آن شب تا صبح همه کتابه ریاضی و علوم کلاس پنجم را تا آخر خواندم به خاطر نجات مادرم همینطور پدرم حالا که فکرش رو میکنم دایین اونم گرفتار ریاضی من شده بود ده جدا؟ عجب روزی چند تا؟ بله تعملش خیلی سخته میفهمم خب البته معلمشون شرط نمره هفده گذاشته بله بله تأثیر داره نه آقا خدا نکنه؟ مطمئن باشید چشم چشم بسیار خوب. خدا نگه دارتانا. امروز این پنجامیش بود پدر آرومی بود اما میگفت خانمشو برده دکتر قرصه اصاب بشترده دیازه پا ده. چرا؟ چون بچهاش اسپیکتر آزمون نیست سلام، ده چایی بخورم آقای آها. شما اصلا این شرط نمره رو بذار کنار بذار همه بیان تو آزمون شرکت کنن آقا سوالا رو درگیب آقا، سوالا رو یه خورد سوراخار بزرگتر بگی بذار خورده خوردریزا بریزم پایین، دون درشته ها بیان والا. از سال دیگه هم شرط معدل میزاریم برای ثبت نام که هرکی دست بچهش نگیره بیاری اینجا، تمام آه چه شده پدر تو زنگ نزده بیمارستان که نخوابیده نغا راستش خودمونم نمی‌دونیم کجا میخوابه ولی اگه میشه اومدیم امتحان بده چون 14 شده ها آقا یادت نره داداش این بچه خیلی بی باباشو میکنه همش بهونه میگیره اون یکی هم همینطور از دیروزم هم که فهمیده حرف شما رو زمین انداخته دیگه خواب و خوراک نداره دیشب تا صبح نخوابید گفتم حالا... به عرض بنده رسید این آب جی مینا بابا میبریم یه نگاهش میندازه تموشو بری پی کارش بالا واسه همه خوبه واسه من خوبه واسه تو خوبه واسه این خوبه دست شما درد نکنه داداش فقط گفتین یه نگاه دیگه داداش من بچه همو اول به خدا بعد به شما میسپارم و هم زیادی هم فشار بیاریم میشه هیزم زیر و اجا یه با شربت بریزی نه؟ یه یعنی با شربت بریزه بر دستت درده کنم عبدالله بیا این گلدون شکر از ساره بردارن عبدالده دست بالمون بیماما اینچه بیداده بله خانم بفرم. چه خبره این چشه خالی چند شده خوبه دیگه نقاشی که آدم بیس نمیشه مگه پیکاسوه آیهو، بهش بگو کنتر قلب بابات که وساد، بیا سر قبرم اینجوری زار بزن. چه میدونم؟ یه گل قابض دمکرده دم کرده، چیزی بده با خوردهش تو آروم شم بیا. نمیدونم خانم. نمیدونم. چه میدونم؟ دیر وقت. دافس. دارم میگه کی دیگه شکارش کنم عفته داره زار چرا نقاش شده وظیفه. باشه، این پسرنیم ما. دیگه پیداش میشه الان ببخشی داداداش توی این همه گرفتاریشون بگو پنج بگو پنج پسرم بگو پنج آوه. نمیگه قریبی میکنه خوانو بچه البته الان موقع تربیتش. ها البته اگه دیر نشده باشه شما باید مادرشو ببینی آوه. مادر الان یعنی مادرش اینجی تش دارن؟ بله خانوادگی اینجا تا ده راحت میشماره یعنی پدرشم الان اینجاست؟ بله راستش پدره از نظر جنتیک کم، ایکم... البته باهوشه ها ولی خب یکم تو ریاضی مورد دارد اینو ببینی خیلی بازی بود اما الان دیگه سر به راهه خیلی آرومه تلا این دیگه الان خیلی زرنگ شده قبلا خیلی تنبلی میکرد تازه نقاشی هم میکنه البته خوب، در حد پیکاسو نیست ولی یه خط خطیایی میکنه اما من بهتون قول میدم که ایشون هم درست میشه بله، اینو که من مطمئنم شما این حیبونا رو اینجوری درست کردید بچه آدم که دیگه هیچ <تصفح> دست خودش نیست، باید درست چه چموشی میکنه نه به خاطر اینکه گابه ها. نه چون سندش کمه مثل بچه ها به شیطنت و لجوازی احتیاج چرا؟ به خاطر اینکه میخواد مورد توجه قرار بگیره. درست میشه. درست میشه. بله بله منم مطمئنم که درست میشه. مریضی که مشخصه در ما ساده است. یک تکان به ژن مورد نظر طوری که بیدار شد اون وقت همه چیز حل درس شما درک بیا ببین پسر جان. بیا. خب بگو یک. چی؟ بگو یک یک یک. بارک الله. بگو دو دو. آفرین. بگو سه. سه وو. یه یه دیمانت میبینی؟ دو ده سه. تا پنج درسته درسته مامان. تا صبح شروع کارشونه. ببینم. اصلا چه گافت تا پنج بهش موره آره دیگه البته گا هم ای. ولی هیچ کدوم خوندن رو نوشتن اون بلد سنو میمون میمون امیدشون به میمون هست. مگه اینکه اونا یه کاری بکنن اونها هم یادشون میدن. همین امروز فردا به اون رسیدن مهندس ها؟ هم درست میشه نیا نگوش گرفتار دکتر چیکو منده گفت آقا ژنه معلوم نمیکنه که اون دو گو این اینجینی که مثلا شما میخواین مثلا 20 بگیره این یعنی خوابه امروز برده ان شاءالله امید خدا بیدار میشه ان شاءالله خدا از زبونت بشن شما هم به نظر من نظرم با این بچه ور نرو خودش ان شاءالله سر فرصت بیدار میشه قضیه کنه میشه تماشاش میره <تصفح> آروم باش آقا شیرینی زندگیه دیگه بعد کم مجبورش این بچیه تکونی بخوره زود بیدارشه. دوست داشتم زودتر برسم خونه رنگا رو بزنم هر وقت باشش من بود دوست داشتم فقط بخونم کی گفت اینک سواد نمیاره همه این رنگا رو که ندیدن یه جورایی فکر کرده بود که وحید چیزه یعنی فکر کرده بود که گنزنه خیلی طول کشید تا بفهمه <تصفيق> بچم خیلی اذیت شد این دو شبه اصلا خواب به چشش نمیاد انقدر نگرانت بود آره میدونم از منم پرسید بابا شبا کجا میخوابیدی؟ میدونیم اینا داشتم فکر میکردم که ما دیگه کم کم باید قبول کنیم این اونی نیست که یعنی منظورم اینه که ما میتونیم همه آرزوهایی که داشتیم و بذاریم برای <میدونیم> <میدونی> بچه خوابش برده بیایم به جوش بیایم سعید. میگم لباساتو که ندادی بشورم نه تو ساکه این گیاه دارای خاصیت عجیبی است بر اساس مطالعات دانشمندان به دلیل داشتن ترکیبات منحصر به فرد تأثیر حیرت انگیزی بر روی روش آئی کیو دارد قبایل بومی این منطقه از میانگین آی بالاتری بالاترین نسبت به جوامع پیشرفته برخورد دارند. نام این گیا لاپکریا بوده. از الان یک ساعت فرصت داریم سآل از همون درسایی که خوندیم توست چی اومدی؟ به همه گفتم بیان هم اومدیم سرتون رو برگردونیم ورقا رو ازتون گرفتم سآل رو به دقت میخونیم بعد جواب میدی؟ آقا میشه اینکه بزنی؟ بزن. اگه نیم نمرم ام داره بزن. نکنه تا حالا سال را رو نمیدی دیگه نمیتونی جواب بدی. صحبت نباشه. دو فر؟ چیزی سوالا احتیاج به فکر کردن نداشتن. فقط باید می‌نوشتن. واسه همین یکم طول کشید. آقا جزی؟ بله آقا چیزی ننویشه که مزمیش به نویشه خودش مونده توش بهترین کار اون کرد همون اولیش برایشون بکرد <متصف> اون که خوب سوالا خیلی آسان بود آره معلومه جوابا سخونه ناکن یه بارم که گذاشت از دو دستش به نویسیم اون رویه دو ساعت دارن تو دفتر ساکتش میکنن 17 شده زهتابی؟ بله 12 شده پس از رو دست اون ننوشته 3-4 تا میز فاصله داشت قهرمانی که داشت می نوشه این شده 14 عجیبه موبایل چیزی همراهش نبوده؟ نه موبایل؟ نه جیک می زدم، من می فهمدن. فقط فقط چی؟ اینک اینک؟ آره از همه اجازه گیره عینک بزنه فرستنده و گیرنده از این ور میگیره از این ور میفرسته به اندازه سر سوزنه هر جوی جای میشه دماغ، دهن، گوش باباش از خارج براش برده مثل همون دارو چینیا ونزوئلا؟ خب این که خیلی عالیه از اونجا که تا آمازون راهی نیست نه اصلا آمازون یه تکشم اونجا از خوهرم نا زیاد میرم واسه گردش پس میشه خواهش کنم که بگید یه ذره از اون گیاه برا من بخرم باریشه ریشه نه نه نه همون برگشون یکی دوتا کیسه بفرستم فعلا کافیه الان که کارشون تمام نمیشه نه چند سال طول میکشه ببخشید چیز نباشه منظورم از اینش هر چی باشه خودم تمام و کمال پرداخت میکنه این هم اسم ال میشه. البته بومیای های اونجا بهش میگن لبکاری هست روز کنید با اتابعا میخواستم اگر ما مم... مکنید نه آقا تک نشده بله تشریف بیارد نگران نباشه آقا خیله بله خودشم اینجاست لطف کنید بله تشریف بیارد اینجا تشکر میکنم نخیر. نباشید آقا بله بله خواهش میکنم خدا نگهدار بیشتر از این نمیشه پای تلفن گفت درسم سکته کن آقای حکیمی بلش کن توی اون چیزی نیست من میدونم سلمنشه این نمره از کجاست این مامان چون نه خون زنگ زدم الوم بود میرسه دیگه او ساعت تو دفتر فکر کنم تا الان تقلوبشو در رو برده. از من بپرس او رو دست نوشته با بابا تو همه از من بپرس از من پپرس پی چی پیشش نشسته بود از روش ما نویسه همه رقایی تیکیو رو عم بزنی. آب قند. دوباره دیگه خودم ممتحنش بودم. همینجا ازش امتحان گرفتیم. مثل اینکه داره آب میخوره به همین راحتی مسائلو حل کرد. چرا به بالاخره زحمات ما و البته شما به بار نشست و نوگل ما شکفت چی شکفتنی مبارک باشه. <تصفيق> خیلی مهمون آبا مادرت خبر داره؟ من خودمان تازه فهمیدم اه اوه اوه بازیم پیدا شد کی؟ زهد آبیش آبا من با عزت مرخص میشم زودتر به مادرشم خبر بدم تمنام میکنم خدمت, خدمت گذارم خدمت از بست خربانچ خرش میکنم بسی جانت تو بخواه شد بخواه شد پس افتخاری واقعه هم. بنده فهمیدم میشوند در آزمون سراسری موفق میشه میشند. آزمون سراسری. بالای استعدادهای درخشان. سلام عزیز دوخت خواهش میکنم. تمام. شما بفرمایید داخل. من میام خیت مهتم بله زد. تا بالای پشت تصنوج بفرم. آشکی تو با کن برو. به داخل. بالای استعداد آه. میکنم تمام میکنم به داخل من میام خیت آقای آقا مودی بازدید. آقا عزیزه. خواهی یه چند لذت داد. بسرا میام بر. شما به سعیده خیلی عزم میخوام میخواستم اگه ممکنه یه چند قطعه از اون درمایی چینی تون رو بزید ما بریزیم توی آب سردکان مدرسه همه ای بچه ها تنابول کنن استعدادهای درخشان بشن میکنه شما ایساریز در راه علم وحی سعیدی سعیدی یه اینه تو جوابش. گذاشت دست نید اگه اینکه سر گذاشت اینکه سر گذاشت اون رو سر شوهی نکنی به سره بابا اه، بگم میخوایی زواستیم حالتون بهتر بشه؟ بهتر شه از این بهترم اگه میشه؟ بابا <تصفيق> این اینکه چیه؟ اینو پیدا کرد بشه بزنم؟ بزن ببینم. بوا بوا اینو شاگرد اولش بله شدی که. ای بابا اینا کی؟ ای رفت زیر کامیون نیست و نابود شد بیا بابا یه دوم چرا را نگاه میکنی؟ سارا نمیخواد تا رسیدیم خونه دفتشتو واقعی نشونه ما بدیا. بدی یا برای بعد تازه اگه اومده بود بعد نهار بعد شام بیا بابا شو خانم. خانم کجایی بیا بیا که بیدار شد داد نزن بچه رو بیدار میکنی کی بیدار شده جنش جن آقا پسر گلت بیدار شد دکتر گفته بود ممکن بیدار شه این چی بچه‌ساز نکنم پایش میکنم موضوع خیلی حساسه دوست داره بزنه چیکارش داری بابا جون اصلا می‌خوای اینا که خوشگل نوباصت بخرم با هر شوهری که دوست داری سعید 20 بیس شده 20 برو بالا خانوم یه سوالی رو جواب داده که خود معلمش توش مونده بله آه چجوری؟ همون چجوریش؟ داداشت گفت نمک زندگیه همون قهراشتی گفت ممکنه باید بشه یه تکونی بخوره علتش همونه میدونی؟ کاش که ما زودتر با هم دیگه دعوا میکرده <تصفح> من و تو که همیشه با هم دعوا میکرده نه آره منظورم اینه که من زودتر قهر میکردم این بچه زودتر یه تکونی میخور. <تصفح> من دوست ندارم دیگه با هم قهر کنیم قهر. دیگه تموم؟ تو این خونه قهر و دعوی دیگه تموم سلام از خانم دکتر نه نه خواهش میکنم خواهش میکنم نه بابا چه خجالتی من میدونم بالاخره کار آزمایشگاهی بدون مشکل نمیشه دیگه بله درست شد خب تبریک ارز میکنم تبریک ارز میکنم منم یه خبر خیلی خوب باستون دارم ژن پسر منم بیدار شد بله بله چه جورم بیس شده 20 شده بله فرموده بودین. فقط خانم دکتر من یه سوالی از حضورتون داشتم میخواستم بدونم که این قابل برگشته یعنی منظورم اینه که این یعنی که بیدار شده ممکنه یه روزی بخوابه نه نه نه مراقبیم نه نمیذاریم بله خیلی ممنونم ازتون خیلی ممنون که خبر دادیم خداحافظ خداحافظ شما خانم دکتر بود گفت مشکل این گابشون برطرف شده دیگه تا ده راحت میتونه بشمره واخه دیروز که ما رفتیم اونجا این گاوه قرار بود بشماره نتونست ولی همین زنگ زده بود که اسخایی کنه <تصفيق> مینا خانم دکتر چیز دیگه هم گفت گفت این ژنی که بیدار شده دیگه نمیخوابه یعنی احتمالش خیلی کمه که بخوابه آها. ولی ولی باید ما شرایطش رو چیکار کنیم فراهم, فراهم کنیم فراهم کنی <تصفيق> بفرمایید دهنتون میش میکنید بابا نه بابا نونم نمیخری؟ تو بابا ها ها, ها چرا میخرم بابا؟ یه استراحت بکنم یه چایی بخورم چاش استراحت چیه؟ من من خسته همین الان میرم ازت میخرم. چی میخوای بخری باش؟ اما کف فوتبالیا که پسر دایدش میخوای بگم بابا برات بخرم مامان؟ کفش فوتبالی کدو به خانوم؟ پسرم ریاضیات تکمیلی داره راهنمایی میخواد میخرم واسه چشم؟ برای اینکه خیال بابام از راهنمایم راحت بشه دوست داشتم هم همه رو یه دفعه بخونم و یاد بگیرم ولی بابام دوست داشت خیالش از دانشگاه و حتی بعدش هم راحت کنه واسه همین هرچی کتاب ریاضی چاپ شده بود برام می‌خره مامانم شده بودن مثل موقعی که منو به دنیا نیاورده بودن. شادی هم خوشبخت‌تر شده بود. شبی که قرار بود فرداش دانش آموزا رو سراسری امتحان کنن، ریاضی دبیرستانم تموم کرده بود. این چیه؟ نسبیت خاص؟ آره؟ از پسش برمیام. بابا این کتابا بعد این بچه سنگینه سعید آره ولی الان که داره یاد میگیره خب چیزی بگیره منم هی بهش خوراک میدم سعید یه هفته از این بچه نمیواد بهش شام بخوره آخیش میکنم کنم آروم آروم اصلا دیگه قرار نیست کسی تو این خونه با صدای بلند حرف بزنه یه کاری نکن یه جن خفته رو دستمون بمونه یادت نیست چند سال دور کشید بیدارشه؟ میدونم ولی من نگرانشم اصلا نگران نباش اصلا نگران نباش بسپرش به من واحی چون سعید سعید یار زین خورد آقا بقیه‌شو بعداً بخونی چقدرش مونده؟ خیلی خوب بچه ها زنگ چی داریم؟ آقای جازه ریاضی. خیلی خوب اگه تول کشید من با آقای کردیم صحبت میکنم بخواه سب کن. بچه ها اگه کسی کاری داره یا دلش میخواد بره بیرون میتونه بره ها. آقا آقا نه همون بیرون بمون تشقا بخون طبیعیه خانوم طبیعیه کاملا طبیعیه داداش منم همینطوری بود شبیه یکی از امتحاناش انگار یکیزه آرت پشیدی سرش سفید خب این بچه هم الان تحت فشاره دیگه ناسلامتی قراره جاز به تیزخوشان امتحان بده و روز مهمیه میه براش برای مام همینطور خبش فشار میاد دیگه میگه انی یعنی درست میشه؟ پس چی؟ دو روز بعد موهاش شد عین قیر، سیاه. از روز اولش هم سیاته. شما هم هر چی خواستی بگی توی این خونه، بعد آروم بگی. به خاطر چهار تا موی سفید که ما نمیتونیم آینده بچه‌م سیاه کنیم خونه. یواش. آه هست. کاش فقط چند تا دونه بود. ولی این تازه شروعش بود. پدر وعید سیدی هستیم؟ بله چطور؟ خیلی من چند رسوی شما رو توی مدرسه زیارت دو کردن بله بله خاطرم هست همون آقایی که فکر میکردن چیز شده حقشون رو خوردن بخورن؟ <تصفيق> نیم نمره نیم نمره از وسط و برقا کشیدم بیرون رسوندم به نوزده و نیم الان همین توه ما که خودمون نشود درسته ساوی درس خونیم یعنی رفقا نذاشتن ولی اینو نمی کلی تو حالا خرجش کردم لازم باشه بازم خرجش میکن آفری بار کل پسرم میگفت انگاری پسرتون یهویی از این رو عمرو شده اگه چیزی هست با ما ها بگیم از خجالتتون در میان نه راستش یه چیزی تو وجود خودش بود یه حسد میرو او یعنی جن ریاضیاتش یهوه خواب پرید شما میدونی ما چند وقتیش بردیمش یه جایی آقا نمیدونی. با این جین هیوان ها چی خانم دکتر عصدی بعد دقیق ببخشید آره آره یکیشون اومد آماده این؟ ای؟ آماده سه دو یک بگیم پترم خواهیتون رو معرف بکنی؟ من وعید سعیدی هستم اولی نفری هستی که بیرون اومدی راحت بود؟ بله انگیزت از اینکه که می بری؟ برم جز تیسو شو. آفرین اینم یه تیزی دیگه کهت چی شو؟ این چی رو سرش کاری کردی پسرم خب دواری آده آسون بود بابا با یعنی همه ساله رو درست جواب دادی؟ با داری کلا بابا از بابا رو سرم گشت چی بابا؟ سا مو هم گشتی شده نه بابا نه, نه. نه میدونید واسه خودم نمیخوام بچه گونه شو نداریم بچه گونه؟ آره یه ضعیفترشو کم رو. مود شده مثل اینکه چند وقت پیش هم یه خانیم اومده بود برای دخترش میخواست خیلی من. کدوم همیستا که اتقرب شد ماما؟ سلام. باید به همه خبر بدم. چیو خبر بدی؟ سلام بابا قربونت برم تلویزیون خانوم تلویزیون تلویزیون امشب چه سرمون نشو میده یعنی پسرمونه نشون میده. تیزترین تیزهوشان زودتر از همه قرقش رو داد بیرون. باید به داداشم هم خبر بدم این دفتر تلفن گفت جامه خارجم نشونش میده. قربونید برم ماما. سعی دین بیشتر شده که چی بیشتر شده؟ موهاش آه. مو بل خانوم، تو بکره ازم چی میگی من یه موی بچه یعنی یه موی سیاه بچه به صد تا بیست دیگه و ریاضی و اینشا نمیدم خواهش میکنم اگه مشکل شما چهار تا موی سفیده من فکرشو کردم خانوم، این تورو نمیشه درست کرد اگر بیرون که کاری نداره موی سفید که جگه این کفه دستم بشه من عین روز اول درستش میکنم. <تصفيق> رنگ کنی موی بچه قدر رنگ میکنن با ساادشم تو کجا ؟ دکتر 20 روز من صدای این بچه رو نشیدم چشماشو ندیدم. این اصلا دیگه بچه من نیست. داره پیل میشه ولی این همون بچه یه که من از روز اول میخواستم. اجازم نمیدم به خاطر چهار تا موی سفید دستکاریش کنیم. <تصفيق> دستکاری؟ مای بیام. آقا مینا تو چرا چیز میکننی؟ یاخه یه دا صبر کن. جانم سلام علیکم نه خواهش میکنم خواهش میکنم زودتر از همه بله امشب بله. بله تلویزیون قراره که امشب نشونش بده ساعت دهانی فقط جناب مدی شما یه لطفی بفرمایید به معلم ها و این دانش آموز ها چیز چیزه اولیاشون یه خبر اسم مدرسه اینا نکردم خانوم مال فشاره فردا جواب آزمایشش بیاد همینه میگه اصلا همین فردا من زنگ میزنم به مدیرشون یه هفته استرد مطلق میگیرم خوبه؟ هرچی کتابم هست جلو چشت جمع میکنم هرچن هرچن تو این نسبیته هم رنگ مو که دوست نداری میخوای فردا موها شاید بزنم چشت بهش نیافته ها ها سن دیگه به درست. آیدی گفتم. 1000. برای یاد گرفت و خوب باشی 20 برای درس‌های خوبت، 20 برای رفتارتون تو خونه و مدرسه. خاموشش الان مامانت میادا. می میاد ها؟ نمیاد بابا. واسه بابا دیروز هستی؟ نصفه رفته اونجا دنبالش. خوشان این دوره ابتدایی. رف زیر کامیون تمام کشورمون. پترام خودیتونو معرفی کنی؟ من ای بابا اینها ببین. برای جان اولین نفری هستی نفر که بیرون اومدی راحت بود؟ بله. انگیزهت از اینکه میخوای بری؟ میخوام برم جز تیسوشا. آفرین اینم یه تیزیه دیگه. پترام یه, یه لحظه. یه لحظه صبر چیزی به مامانت نمیگی یا؟ مامان پیدا میکنه نمیذارم نمیذارم الو الو ببخشید اونجا روابط تلویزیونه؟ آقا سلام علیکم بله, بله. میخواستم در مورد این برنامه جوانهای چهره بله بله همون تیز هوشان. یه مورد حیاتیه در مورد همون تیز هوشه. بله بله زندگیش در خطره. نه نه بدزنش؟ نه یه موردی که من شخصا خودم باید توضیح بدم. شما آدرسی چیزی ازشون داریم؟ نه آقا میدونم سرمایه است قرار نیست به باد بره فقط اگه قد کرد خونه همین نزدیکی است ممازود پیداش میکنه نمیذارم پیداش کنی نمیذارم اومد نبود دیر رسیده هم ندیدمش تلویزیون تلویزیون ها چرا خاموشه گفتن امشب نشون میده چرا نشون میده خانو کنترل. کنترل. امروز هم تا نشون میده. گفتن اونی که اول همه اومده بیرون اون عینک داشته خب خانو خیلی عینک دارن اون اینک هم رفت زیره کامیون خورد و هم همین روزا استکان نلبکی میشه میاد بیرون من اون اینک پیدا میکنم. جناب مدیر ما این گوسنده رو همینجوری پا در هوا واشوندیم در خونه تا بدون جواب چی میشه من که عرض کردم خدمتتون چندین بارم عرض کردم اصل ما نیست مربوط میشه به بالا از ناحیه بد دارید اعتراض کنید اگر اعتراضی دارید اگر این گوسنده رو تقسیم کنه به هر حال بلا تکلیف نگاه بره آقا دادیم آقا دادیم برای هر امتحانش ما یکی دو تا زدیم زمین این رو اونایی دیگه شما خیالت راحت نمیمونه فرید کدومه داره آرکشوری تسی بیارید. بالا اومد. آقای زهتابی رو اول با خودتون ببرید بعد ناحیه نشونشون بدید. بفرمایید. بفرمایید. آقای کشوری کاملا با خودت ببرش. خوب. تموم شد؟ آقای اجازه تموم شد. خب. فقط این چوبش مونده باید نشونه. یه نقطه بذار اینجا بگید آقایی ساله ای نسبش هم آره آقای ساله‌ای نصبش کنه. مش کسایی جو نمیرا، ولی ریسا رو نصب کنید فهمیدین؟ آها. آقای زهزه. گلم؟ میشه بخوره؟ نشه. بله اگه سکی داری میتونی زنگ روزنی؟ آقای جزیب بله. میگم دیشب امامون اومد بیرون, بیرون؟ قضیهی وعیدو بهش گفتم گفت اگر بخواد میتونه بیاد کمک تقلبه شداره بخش وحبه جناب سعیدی بندم تبریک میگم شما که متوجه شدین؟ ساعت هفت صبح خودم رفتم دم اداره خبرشو گرفتم بله بزرگ داشته دیگه قراره از منطقه هم تشریف بیارن ولی خودش هنوز نایمده چیزی شده؟ راستش من برا همین مزاحمتون شدم فکر کردیم که چیز کنیم یعنی اگر که شما موافق باشین به خاطر این که این چند وقت خسته شده یه چند روز تو خونه استراحت کنه مدرسه نیاد نه نه برا مراسم که حتما میاد بله جان؟ هفته یه بار بله برای که درس بده زمینم پلاکارد برای در منعزلم تدارک دیده شده جدا خیلی ممنون خیلی ممنون بله بله از طرف خانواده اولیای مدرسه عالی عالی خیلی ممنون چشم، حتما حتما <تصفح> پلاکارد <تصفح> اینا چیه؟ دیشب رسیده شو خوهرم گفت اینا نمونه است اگه پسند کردید مایی تو تا کانتینر میتونه بفرسته واسه کی میخواستی؟ واسه هیشکی یعنی دیگه هیشکی وحید مامان غذا حاضره بیا ای بخورم وا چرا صدات اینطوری شده؟ وحید وحید وحید بو. داره چوری قفل کردی؟ باز کن ببینم. وحید نمی‌تونم بیا. باز کن ببینم. می دونستم اگه مامانم یا شادی منو اینجوری ببینن خیلی می ترسم حتی خوددا از خودم می ترسیدم تازه مطمئن بودم اگه اینجوری منو می دیدن حتما کار به طلاق می کشید انده مامانمثرشه نمیشه تلو کرد ختی اینجوری دیگه اما من واسم میفت بود تقلبهش رو گرفتم چه چیز کرد بود؟ هسته نباشید ببینم پسر این وحید سعیدی همونی که دیشتب تلویزیون شروع شده ما که فوتوار نگاه کردیم، ولی انگاه نشون شد همون چند سال پیش از خارج اومد ایران آخر تن سال بود اون مرزه نگیر میکرد بهرمانی بهرمانی بهرمانی باور بفرمایید کلی مدرسه این دور و بر سر زدم تا پیداتون کردم. بله، کم لطفی کردن، اسم نبردن توی تلویزیون. <تصفيق> چیه؟ اتمن گفتن ضرب میشه. بر حال ما توی مدرسه برای ثبت نام شرط نام، معدل داریم، مصاحبه داریم. این کار سوء من شده. من دوباره بچه که دیشب تلویزیون نشونش دادم. دوامو اون دارم می‌گردم. اون بچه چند روز نمیاد مدرسه. چطور مگه؟ شروع شد. چی شروع شده؟ هیچی هیچی گفتنش یه خورده سخته ببینم شما آدرسی شما تلفن چیزی ازشون به من بدین بله آقا چه کار شما؟ برای جلوی در, در نوشتین؟ بله آقا تمومه کو کجاست؟ بیرون آقا ما رسردار من رسرم نست کردیم آفرین باریکله آقا ما اطلاعات دانش رزن رو نمیتونیم به کسی ده. اونم این دانش آموز شما یه شماره تماس بدین ما بهشون میرسونیم همین دیش. که عرض کردم خب اگر کارتون تموم شده ببنی در خونش نصب کنید جشمه فقط با اجازه شما همسایی ها رو اضافه کردیم به نخلی بچه میگه جناب لطفه شما کم نشی بفرماید بفرماید دیگه نشکن رفت بله آقا رفت بسیار خوب برید کاراتون انجام بید برید آقای رزه ببای رزه نه آبجی چار چشی موازرش بودن فقط یک کچول و عباسم پرتیگ گاوه شدنم اونقدر نبود نه چه خبر ازشون؟ از که از گاوه؟ نه بابا دستوره. مولو میگن همه ایراداشون برطرف شده دیگه میتونن تا ده مرن. ای, ای, ای, ای گفتم هم پسشون برمیاد خب آبجی بایی چی شده؟ چی بگم بنده داشت یعنی جوری بگم بچم شده اینه اینه دور از جونش خدا بیامرز آقا جونمون. خب به خانواده خودمون کشیده دیگه. این موهاش اینجا همه سفید. زیر چشش نیست. گود حتم دارم آبجی بار زیادی رو دوشه خورده‌ای. حالا ما... وقتی یه سفره‌ای پهنه که اینقدر نمیشه پاش بخوره تا به تریکه. همه چیزش بالاست. البته دیگه تو این سن نو سال طبیعیه دیگه. طبیعیه؟ مگه مولا اون آقایه نیست که دیر از اومده بودش؟ این مال پسر هست دکتور. پسر؟ پسر بچه؟ امیخا. خد مگه درس هستم. اگه درس هست حتما تقلبش پیدا میشد. مهی درس چیه؟ همه درس میخونن که وقتی بزرگ شدن، کار کنم پول در بیارن میگه تازه اگه خطت خوب باشه میتونی یه مغازه بزنی توش کار کنی پول در بیاری بایی بایی دایی یه دقدر واکن؟ مانه میکنه دادش نمیاد بیرون میدونم بچه آب جی با زبون مارد و سراخم بیرون شما سرکنه جان به درستو خدا یه دوتا کلمه حرف زن ما بدونیم سالمی هایی <تصفح> هایی صرفت <تصفح> هلا مثلا اگه قطعی این صرفت هم یه دوتا کلمه حرف میزدید دیگه ما رفته بودیم بعد کارمون چی بگم دایی این ای بای دیدی دیدی گفتم شده اینه بابا خدا بیا مرزمون کیه؟ از طرف مدرسه است اگر پسند کردید بگید کجا بزنیم کجا؟ این؟ نره ماشه خودمون میزنیم آقا وحیدم های بیاد کمک وحید آخه م... سلام علیکم سلام علیکم ببخشید اینو الان نزنید لطفا نزنیم؟ بله, بله. چرا؟ این موضوع خصوصیه من خیلی به تو ارز کنم ببخشید چما؟ ببخشید دوستانش مفصل تشفره بله زیر سر اونه اینکه؟ بله خانم دختر من شده بود عین مادر بزرگی که خدا بیامرزش. اینا تو میشه؟ حالا چیکار کنیم؟ چیکار بعد بکنیم الان قبل از اینکه دستون بهش برسه باید از این ببرمش. دست کی برسیم؟ دست خانومم کجاست؟ پسرتون کجاست؟ اونجا تو اتاقشه. وحید وحید بابا. وحید بابا کجایی؟ هیچین، و هیچ چی چته؟ هیچین. این دکترش زنگ زد. گفت شده این ده ده آزمایشش یکم یکم چی یکم چیز شده خب مثل این پینه مرده شهت سفتان ساله شده شهت سفت شهت داداش من بچه همو میخوام داداش بابامو شهت پیس سالش نشده بود که رفت من بچه و میخوام واید جان سیزه شو میخوام چهارده شو میخوام منم نمیخوام، منم نمیخوام. باید بابا در واقع کن. باید ببینم. ببینم ببین باید بابا. دایی. با دایی دغدغه در واقع کن. میشکنم میشم. من در واقع برو ما بکن. من نمیخوام کش رو باید بابا. در واقع دایی. دایی. بابا. دایی. در واقع کن. بابا. باید. کار اینه؟ این یه دقیقه بده من اینجوری فایدهی نداره حاجا بدیش بدش به من خاطر جم بلایی بریم زکارش بیارم که ماله هم نشه جمعشگم بیست دنبار روش ند شد از این سنگین تره جون به در برده چیزی نیست جم چیزی نیست اصلا طوری که جم هیچ گفتم فایده نداره آقا من کورش هم دیده بودم بخواستم بدم این اینکه لعنتی رو زوبش کنم حالا شما مطمئنی که این اثرشی این, این چیزا این مواباینات از بین میره یکی دو روزه خوب میشه آقا اون یکی اثرشی یعنی منظورم چی چیکارش کردی؟ رو بگیم من بوسته تو رو میکرم امروز بچه من ریاضه شده 16 میکرم یعنی چی؟ 16 همون جور که اون گفته بود بعد از دو سه روز مثل قبلم شده بابا و مامانم هم مثل قبل کم کم چم پدرم متوجه شد که من فقط به خاطر نمره دوست نداشته باشد و این بود امشای من درباره یک ماجرای اجی. تمام شد آقا این واقعی بود؟ راستش بله ولی اونقدر عجبه که کسی باورش نمیشه به حال تخیل خوبی بود آفرین خورو بشی همه وقت کلاس هم گرفت بیا بچه ها هر کی کار هیجانی داره بره بیرون انجام دقیقه هم که نبیرین آروم بشینیم کلاس رویاسی هم ها الان آقای کریمی میدیم آقای اجازه آقای مخشی نمره نمیدیم؟ نمره نمره هم میدیم بیارید دفترچه هاتون شما بمونو پیش من دماغم. و تو 15 آقا بگی برو با ماهی اون دستان عجیبه برو بشیم بابا <عزم> الو <عزم> می خواستم بهت زنگ بزنم. 20 روز دیگه فیلمنامه کامل هسته. نبا جون تو قصهش الان دستمه. همین دارم میون پیشت. میون پیشت خداحافظ. اینی برای این 20 ای روز دیگه شعر من مصادف شده. به خاطر کمی وقتش خلاصتونم گرفتیم یه ماجرای جالبی راستش پیش اومده بود. متونش مثلا آیه موضوع جالبی هم اینجا پیش اومده. بفرمایید شما خواهش می‌کنم. باشه خواهش می‌کنم. بله آقا به عرض میکردم خدمتون من هنوزم دارم بهش میدم اینه که میخواستم بدانم اون اباخر پیشرفتی داشته آقا پیشرفت داشته یه نمره آماده بالا همیشده ایجده خب خدا رو شک بس بله. پیشرفتش حد میزدم درست. من بایزتون پیرم شده بعد برم خواهش میکنم خواهش میکنم آی سایدی جانه بسی امکان داره چند تا از اون برگاه بله بله بله حتما حتما میارم قطبتون اتفاقا چند تا کیسه جدید برام رسیده میدونی من اینها رو خودم شخصا سپارش بینم اصلا همه چیز میارن آوازون خیلی معمول خوش اکر خوش بکنم دیدی دیدی دیدی گفتم بیست روزم رو میشه حالا چطور بود؟ جدی؟ گفتم که با هست از از آه راستی یه چیزی یادت نره حتما تو تیتراش باید بسم وحید سعیدی یا به عنوان وحساس داستانی از وحید سعیدی چی؟ دست خب آقای کریمی معلم ریاضی دو نمره باستش میگیره ها باشه باشه کدوم سنه کدوم و گوشی سلام دیکن خواسته نباشید من مادر حمید هستم خواهش میکنم چطوری حمید خواهم میخواستم در مورد حمید با صحبت کنم الو ببین من بعدم به دو دقیقه دیگه حدس من خدافزم ببخشید حمید خان فقط این نوبت نتونست انشاشو بخونه چند نووت دکتش 20 شده خیلی پیشرفت کرده ما شده بالا مسئله همین پیشرفت کسی باش کار میکنه ببخشید پدرش مشوقشه ایشون وسط دانشگاه هستن ادبیات تدریس میکنن یعنی همه فامیل پدریشون شاعر و نویسنده و اینا هستن ما یه چند سالیم هم سر همی با هم درگیر بودیم کارش به جای بارش میکرد که حمید خان غیرت کرد و والا می دونه این بچه ذره چی شده میره تو اتاق بیرون نمیاد هی hey, می نویس هی hey, می خوونه من نمیدونم این داره چیکار میکنه؟ فکر می کنم تا سه روز دیگه شما چش 20ست به شاق ورف نگران سلامتیشم همین جوش این بچه ها وقت نداره یه لحظه فرقدش روشان از بس بهشون تکلیف میدن انجام بدن. اومدم مضش هم یه سر این رو کنی خره باش صحبت کنین به حال حرف شما رو بیشتر گوش میکنن. امید خان مامان راست میگن همه قرار نیست نویسنده بشن که. هنگو بابام بابام بابا. ببین معلمه چی میگه برشت برشت الو همون برم نشو بابا ها به زنی میزنم بوشی بوشی احرید من به حرف مامانش بوشی کنی عزیزم خانم هدی من به شما قول میدم خیال تو راحت باشی باش صحبت میکنم خلیم امرو آبا منچک الو چی؟ نه جمعه چه جمعه چه جمعه کدوم جمعه؟ آره آره آره آره اینقدر عجیبه که هیچکس باور نمی‌کند.